اعوذ بالله از العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین السلام و السلام علی نبینا و آله تاهرین خدمت عزیزان و دانشجوی خودم عرض سلام دارم روز به خیر عرض می کنم. الله که از نعمت صحت و سلامت به طور کامل برخوردار باشید و در پناه خداوند الله از هر گونه آفتی به دور مانید متاسفانه یه مقدار طول کشید تا من تونستم وارد سیستم بشم و با مقداری تأخیر داریم کار خودمون رو شروع میکنیم ما در بحث استعاره که استعاره رو تقسیم کردیم به استعاره مصرحه و تصریحیه و مکنیه و بلکنایه و برای شما موارد رو کامل توضیح دادیم و به شکل جزوه گفتیم ما در واقع مباحث خودمون رو برای شما بیان کردیم الان در واقع درس جدید نیست این نموزجی که میخوام بخونم نموزج است انشاءالله عزیزان هم به کلاسمون ملحق میشند نگران نباشید اگر هم یک زمانی با تاخیر آمدند این مقدار که وابسته به درس قبل هستش رو از سیستم استفاده خواهند کرد و عقب نخواهند ما نموزج رو برای شما میخونیم در واقع نوعی تمرین است خود کتاب هم حل کرده ما براتون توضیح میدیم در واقع درس رو یک بار دیگه برای شما دوره میکنیم تا انشاءالله درس جدیدمون رو شروع کنیم نموز جون قال المتنبی متنبی گفته یسف و دخول رسول روم علی سيف دولته موقعی که توصیف میکرده در حالی که توصیف میکرده وارد شدن رسول فرستاده رومیان رو بر صیف و رومیان شخصی رو منباب مذاکره و پذیرش شروط سیف و دوله، خدمت سیف و دوله فرستادند خب پس حال و هوا رو میدونیم چیه سیف و دوله درون کاخ خودش نشسته فرستاده روم وارد میشه که خدمت سیف و دوله برسه و شرایط رو قواعدی رو که سیفو دوله بیان میکنه به پذیره خب این جای خود آن متنبی یسفو یسفو جمله حال است از برای المتنبی یسفو دخول رسول روم علا سیف دوله میگه فعق بله یمشی فلبسات فماد درا الالبهر آ ام علال بدره ار اشکال نداره ما هم تازه شروع کردیم بله سایت هم مشکل داشت منم مشکل رو خودم هم داشتم ما هم دیر وقت شروع کردیم تازه اول کاره اولین چیزیه که دارم میخونم هیچ گونه استرسی نداشته هر مبحث ده بار بیشتر تکرار میشه و شما قطعاً خواهیات خواهید گرفت و انشالله می آموزید هیچگونه استرسی به خودتون راه ندید میگه فعقبله اقبله کی فاعلش میخوره به رسول روم زمیر توش رسول روم وارد شد یمشی این حال از داره فائل اقبل در حالی که راه میرفت فل به سات در روی این قالیچه ها آه، یعنی وارد شد به کاخ سیف و روی قالیچه هایی که انداخته بودند راه می‌رفت. یمشی همشیر تا الان هیچی نداریم خب از در تالار کاخ وارد شد از روی قالیچه ها میامد تا برسه در انتهای تالار که سیف و بر تختش نشسته آه. اقبل یمشی فلبساد فما درا درا یدری دو مفعولیه یعنی فما علمه پس نفهمید فما درا الالبهر یسعا الالبهر متعلق به یسعاست سعا یسعا یعنی شتابان رفت درست شد؟ پس نفهمید به سوی دریا شتابان می رود، ام یا الال بدره یرتقی یا به سوی ماه پرواز می کنه. بالا می رود. یرتقی یعنی از خب میگه میگه در کاخ وارد شد روی قالیچه که می یه دفعه نفهمید من دارم به طرف دریا میرم؟ یا دارم به طرف ماه بالا می آیا من شتابان به سوی دریا حرکت میکنم؟ یا دارم به سوی ماه بالا می اینجا از نظر ترکیبی یکی از شواهد نهویست یعنی فما درا اعل البحره ا این همزه استفخام اینجا حذف شده و ما اینو از اون ام میفهمیم که بهش میگن ام متصله عاطفه معادله بعد این اعل البحرگس آ صد مسد دوتا مفعول دراست از باب تعلیق که تو افعال قلوب خوندید که استفهام چون آمده درا دیگه نمیتونه تو لفظ این جمله عمل کنه مفعول دوم اول درست کنه بلکه کل جمله محلن منصوبه از باب تعلیق جای دوتا محبه درست شد این تو به افعال قلوب خوندی شاید به هم سرینه که همزه استفهام هرش شده پس نفهمید و در، آیا این اون همزه محضوفه آیا به سوی دریا شتابان میرود یا به سوی ماه بالا میرود یرتفی حالا این آقا که وارد کاخ شد و قرینه هم میگه یمشی بسات رو قالیچه ها داشت راه میرفت و رسول روم رو میگه که داشته میرفته روز به طرف سیفالدوله رو قالیچه های کاخم راهشته راه میرفته به دریا داشته شتابان میرفته یا به سوی ماه میرفته رفته داشته به سوی کی میرفته رفته؟ سیفالدوله ولی بگید از سیفالدوله دوتا تعبیر کرده یکی دریا و دیگری ماه ماه تابان ماه شب چهارده بدر یعنی در واقع یک بار سیف و دوله به دریا تشبیه شده در کرم یک به بدر تشبیه شده در بلند مرتبگی و زیبایی درست شد؟ مشبه هست شده مشبه هم به بجاش نشسته قرینه چیه؟ اقبلگم شیفل به آمد و روی قالیچه ها راه میرفت خب وقتی آمد و روی قالیچه ها راه میرفت پس به سیف الدوله خواهد رسید اما سیف الدولهی که مثل دریاست در کرم و مثل ما هست در زیبایی و بلند منطبگی درست شد اینو بهش میگن؟ بهش میگن؟ استعاره از چنو استعارهی بود؟ مشبه هست شده مشبه هم به به نشسته استعاره مصرحه یا تسریحیه قرینه چیه؟ اقبله یم شیف قرینه نفسی. حالا نگاه کنید خودشون این شیوهی که الان اینطور نوشته این شیوه نوع اصطلاح پاسخ دادنه حالا من به فارسی برای شما همه رو گفتم این شیوه تو عربی پاسخ کردم میگه شب به سیف و دولت بلوهر تشوی شده سیف و دوله به دریا. تو دو دومی میگه شب به هزهی با دولت بل بهتر تشبیه شده به ماه تابان ماه شبه شبه. یه نکته ببینید ما تو تشبیه مشبه داشتیم مشبه هم به داشتیم وجه شبه داشتیم عدات تشبیه درست شد؟ اونجا ما میگفتیم وجه شبه درست شد؟ میگفتیم وجه شبه یعنی دلیل تشبیه صورتی که ما تشبیه رو بر اون اساس بنا کردیم اینجا دیگه تو استعاره به اون وچه شبه نمیگن میگن سیف و شده به دریا اما نمیگن وچه شبه چیه کرم نمیگن بهش وچه میگن شونی جامع چی پس وچه شبه استلاح هست برای وصف مشترک بین مشبه و مشبهان به در تشبیه؟ جامع اصطلاح هست برای استعاره اینو یاد بگیرید درست همونطور که مثلا مشبه هم میگن مستعارن له مشبه هم به و میگن مستعارن من ه. درست شد وحش هم بهش میگن چی بگو جامع اصطلاح نگاه کنید پایین میگه الجامع فل استعاره هو ما یعبر عنه فی تشبیه به وجه شبه جامعه اونیه که در استعاره جامعه اونیه که در تشبیه بهش میگفتن وچه شبه لذا میگه شبه حسیف و دولت بلبر به جامع العطا پایینی رو میگه به جامع رفعت ول جمال هم به ماه تشبیه میکنن در رفعه بلند مرتبگی هم در جمال حالا جمالشو نگفتی بعد چه شده؟ ثم استعی را اللفظ الدال دال بهی و هوبه بهرون للمشبه سپس آریه گرفته شده لفظی که دلالت میکنه بر مشبه هم به که عبارت است از دریا برا مشبه یعنی سیف و و هو هوبه سیف پایین میگه سمه استعی را اللفظ و بهی و هوبه بدر دل مشبه و حوثیف و دولت ببینید همین طوری هم همین فرموله الا سبیل الاستعارت تسریحیت استعیر استگاره گرفته شده آریه گرفته شده بر طریقه استعاره تسریحیه اول مسرحت پایینم میگه الا سبیل ال استعارت تسریحیت اول مسرحت بعد چی میگه میگه ولقرینت و فعقبل یمشی فلبسار بلغری نت و فحق بلغم شیفل فلسه این فرمولیه که به عنوان فرمول توی این مورد ذکر کردن راحت هم چیز خاصی هم نداشت دیدید دو تا استعاره مصرحه یا تصریحیه در اینجا بود ما هم گفتیم استعاره مصرحه در کلام بیشتر است از استعاره مکنیه این مثال اول مثال دوم دو وصف اعرابی یون اخن لهو فقال وصف اعرابی اعرابی جمعش اعراب به عرب بادیه نشین میگن اونی که در بیابان نشین کوچ میکنه به این میگن اعرابی مفردش میشه اعرابی جمعش میشه اعراب یکی از عرب های بادی نشین توصیف کرده اخن بهو اخ یعنی صدیق دوست دوستی رو که داشته یه دوستی داشته یا واقعا برادرش بوده که معمولا اخ رو به عنوان دوست این شکل مجازی به کار نبرد دوستی یا برادری رو از خودش رو توصیف کرده توضیح داده فقاله بعد این طور گفته دقت کنید میگه کان اخی داداش من یقری کانه وقتی خبرش فعل مزارعه میشه مازی استمراری کان یک تو یعنی مینوشت. نوشت درست شد کانه یقری ماضی استمراری قرایقری قرایقری قرن خوب این قرایقری فعل دو مفعولیه مثل عطا یعتی بله دو مفعولی به معنای پذیرایی کردن الان یه کسی بیاد منزل ما من از او با آب و چای و اینها پذیرایی کنم درست شد میگم قریتو زیدن ماا قریتو زیدن ماا یا خوب زن. یعنی چی؟ زیدن مفعول اول خبزن زن مفعول دوم یعنی پذیرایی کردم از زید با آب پذیرایی کردم از زید با نال شد دو مقولیه قرأی تو زیدن فواکه هر پذیرایی کردم از زید با میوه ها با میوه ازش پذیرایی کردم خب فهمیدید این قرأیقری دو مفهول. حالا میگه کان اخی یقری تا اینجا ای چیز داداش من پذیرایی میکرد این دوتا به هم عطف شده مفعول اولن یعنی هر چشمی رو و هر گوشی رو الفلام داره دیگه الفلام جنس میگه میگه داداش من پذیرایی میکرد هر چشمی رو یعنی هر چشم بینندهی رو و هر گوشی رو یعنی و هر گوش شنوندهای رو پذیرایی میکرد هر چشمی رو و هر گوشی رو پذیرایی میکرد هر چشمی را با زیبایی خودش و هر گوشی رو با بیان شیوای خودش یعنی داداش من خوشکیپ بود خوشکلام بود چشم بیننده رو پذیرایی میکرد با زیبایی خودش و گوش شنونده رو پذیرایی میکد با کلام زیبایی یعنی حرف قشنگ میگفت گوش شنونده پذیرایی میشد قیافه زیبا و باز و خوش داشت چشم بیننده کیف میکرد پذیرایی میشد خب حالا نگاه کنید فعل قرایقری مفعول اولش باید آدم باشه انسان باشه پذیرایی کردن از انسان صورت میگیره مفعول دومش هم باید چیزی باشه که پذیرایی براش مواقع میشه مثلا آب، نون، میوه اینا. اینجا به قرینه مفعول اول و دوم ما میفهمیم که یقری به معنای خودش نیست پذیرایی میکرد اینجا مجازه چون کسی از چشم پذیرایی نمیکنه اونم با زیبایی با نشون دادن زیبایی از گوش پذیرایی نمیکنه با صدا و بیان خوش پس چی باید به کار می بود؟ باید می گفت بهرمند می ساخت اگه می گفت, می گفت چشم بیننده رو بهرمند میکرد از زیبایی خودش و گوش شنونده رو بهرمند می ساخت از کلام زیبای خودش این خوب پس اینجا اگر گفته بود کانعخی یوم ته او یوم او با عین هیچ چی دیگه تو عبارت نمید. پس بهر من ساختن رو تشبیه کرده به بگید پذیرایی کردن چون پذیرایی آدم با جون و دل این کار انجام میده شده مشرفت هم من ساختن خب الان بهر من میکنه ممکنه از هر راضی هم نباشید یا اصلا وظیفهش باشه ولی پذیرایی نه داره با جون و دل با قول خودمون این کار بایمون باشد به هم تشبیه شده به بگید یقری یمتها هست شده یقری جاش نشسته قرینه چیه؟ علی اینه جمالا ولی ازونه بیانا این قرینه است ولی اگر اینطوری گفته بود نگاه کن کان اخی یقری یقری از زیفه ما اند. داداش من پذیرایی میکرد میهمانان رو با آب ما میگفتیم یغری محجازه؟ نه به این دوتا برینه. شد فهمیدیم یقری به معنای یمتوست پایین نگاه کنید القریه که ما گفتیم القرا القرا اکرام و و اطعامه خب. درست شد اکرام الزیف و اتعا مبود حالا نگاه کنید ببینید یه چیزی رو ما اون جلسه برای شما آخر کار گفتیم گفتیم که اگر استعاره در فعل یا شبه فعل یعنی مشتق یا حرف واقع بشه بهش میگن استعاره طبعیه اگر در اسم جامد باشه که زیادتره بهش میگن اصلیه درست شد اینجا در فعل، یا درس بعدی ماست نگاه کنید میگه شبه امتاول این عین جمال و امتاول ازون بل بیان به قریه زف بهره ساختن تشبیه شده به پذیرایی کردن و از میهمان سمه اشتق منال قریه درست شد منال قریه یقری از منال القرا از قرا مشتق کرده یقری رو به معنای یمتو یعنی یمتوها تشبیش شده به یقری علا سبیل از اد تسریحیت اول ات اد تبعییت درست بادی ولقرینه تو جمالن و بیانن نه قرینه فقط این جمالا و بیانن نیست قرینه اله اینه جمالن ولو اوزونه بیانن هر دوتا مفعول قرین است اله اینه جمالن ولو اوزونه بگید بیان خب این هم ساله مسره و تسریه ولی چون تو فعل بود تبعیه شد خوال تعالی بریم مثال بعدی خدای تعالی فرموده اله لسان زکریه از زبان حضرت زکریا. رب حضرت زکریا پیر شده بود چون جانشین رو اینها نداشت از خدا تو سن پیری 120 سالگی خواست که خداوند به او فرزند پسری بده او تربیتش کنه جانشینش کنه خداوندم بهش داد حالا میگه رب و اینی وحن العزمومنی العزم الفلام داره الفلام جنسه یعنی پروردگار تمام استخانهای من سوس شده مهنه الزم و منی این منی حال هست قداره الزم یعنی کل و خدایا سوس شده تمام استخانهایی در حالی که از من باشه هر استخانی من دارم خدایا سوس شده خب انسان از چی تشکیل شده ازم و لحم و شحم و دم جارتاست دیگه یعنی من شما همه یا ازم استخونه، یا لحم گوشت، شحم، پی و و دمه خون دیگه غیر از این نیست که خب توی اینا اونی که مستحکم تر از همه است کدومه استخان اگر استخانش دست شده باشه یعنی دیگه اون لحم و شحم و دم دیگه مرخصه. یعنی خدایا سختترین سخترین اعضای بدن من که استخانهای های منم هست خب شده یعنی من دیگه صد و پیر, پیر شدم. فرتود. وشته علا و شیبا و شعله کشیده است این الرأس الفلانش لانوش علف لانو تعریفه یعنی این سر من یعنی رأسی و این سر من هم شعله ور شده از جهت پیری یعنی چی؟ یعنی سر من هم دیگه یه دونه مویه سیاه توش نیست دیگه زغال رو زغال وقتی روشن میکنی گر میگیره آتیش وقتی گر گرفت یا آتیش که میاد بعد یه آتیش کوچیک میشه خاموش میشه یا حالا دیگه اون شعله میاد پایین بعد نگاه که این زغال گداخته شده بعد نگاه کنیم این روی زغال کاملا سفید خاکستر یعنی این خاکستر پیری بر سر من نشسته سرم سفید شد وشته علا این شیبن تمیزه پیش میان تمیز نسبت مثل تا و زید و نفسن که تو نهر شاهد کجاست؟ شاهد سر اشتعل رأسو و یعنی گر گرفت این سر من از جهت پیری خب. منظور چیه؟ منظوری که سرم کاملا سفید شده پیر پیر شد خب. اینجا سر تشبیه شده به چی وقتی گفته گر گرفته سرم ور شده سرم از لحاظ پیری اون شعیبن آورده که ما میفهمیم این مجاز گر گرفتن ولی بله آتیش نگرفته به سرش این رأس اینجا تشبیه شده به وقود وقود یعنی چی؟ سوخت هیزم، زغال درست شده نه؟ الوقود ار رأسو رأس تشوی شده به وقود هیزوم سوخت بعد وقود کو حذف شده مشتبه اون به یکی از خصوصیات ویژه وقود خصوصیت ویژه سوخت چیه هیزوم چیه سوختن اشتغال اینو آورده برای رأس ثابت کرده گور گرفته سر من یعنی سرش رو کرده به کنده چوب به زغال که گور میگیره آتیش میگیره بعد اون گور گرفتن و آتش گرفتن و آورده برای سرش ثابت کرد پس راز تشمیه شده به الوقود وقود حذف شده یکی از خصوصیات ویژهش، یکی از لوازم خاصتش که اشتعله باشه آورده شده برای رأس ثابت شده میشه استعاره مکنیه یا بلکنایه چون مشبهه به هست شده یکی از لوازم خاصش آورده شده درست شد نگاه کنید ببینید چی میگه شب به الرعسو بلوقوت تشبیه شده راس به وقوت فل حسفالمشبه به بعد مشبهان به که وقوده حذف شده این طریقه استاره مکنیه رو نوشتنه شب به هر رأس و بلوقود سم مخوض فل مشبه و بهی بعد مشبهان به حذف شده و روم زه الهیه بشه این من لوازمی بعد اشاره شده است به چیزی یعنی به یکی از لوازم خواستش کدومه؟ به هوا اشتعله سبیل الاستعارت المکنیت او بلکنایت به شکل استعاره مکنیه یا بلکنایه درست؟ بعد میگه و و الاشتعال خود همین لازمی رو که میاریم و برای مشبه ثابت میکنیم این لازم مشبه هم بهو که میاریم و برای مشبه ثابت میکنیم این شه قرینه که یادتون باشید تو, تو جزوه جلسه قبل گفتم که استعاره مکنیه همیشه از نوع لفظیه است چرا؟ چون همون لازم مشبه هم بهه که ما میاریم برای مشبه ثابتش میکنیم میگیم اون اثبات لازم قرینه استعار است درست شد؟ ولقرینه تو اثبات و اشتعال یعنی اثبات این لازم خاص برای وقت یعنی مشبه. خب تمام شد حالا بریم مثال بعدی و قال عربیون فلمده عربی بیابانیی در مدح کسی این طور گرده قال عربیون فلمده فلانان یعنی زید مثلا یرمی به ترفیهی حیصا اشارل کرمو درست شد هیسو اشاره الکرم کرم یعنی جود بخشش طرفم یعنی چشم درست شد طرف یعنی البسر میگه فلانون فلانی یرمی به طرفیهی اشاره میکنه با چشمش درست شد چشمشو میندازه، خیصو به جایی که اشار الکرم کرم اشاره کند میگه چون بخواد بگه؟ میگه فلانی دقیقا میبینه چشمش میافته به اون جایی که کرم اقتضا میکنه یعنی میدونه که کرم کجا اقتضا دارد چشمش به همونجا میافته یعنی واقعا جایی که باید کرم کند را فلانی می‌بیند معنای مفهوم عبارت بفهم ولی داره میگه چی فلانی چشمش رو میندازه به اون جایی که کرم اشاره میکند اگر به جای اشاره گفته بود اقتضا نبود می‌گفتش که فلانون یرمی به طرفی خیص و اقتضا فلانی چشمش میافته به اون جایی که کرم افتضا میکنه. این میشد. اما اشارل کرم یعنی کرم اشاره میکنه. اشاره کردن از خصوصیاتی کیه؟ انسانه. یعنی اینجا الان ما میفهمیم که کرم شده مثل زید و که با دستش به یه جایی اشاره میکنه. یعنی شخصیت پیدا کرده حیویت پیدا کرده انگار که کرم یه پیکره ایست انگشتی دارد اشاره میکنه میگه کرم به هر کجا اشاره کند فلانی چشمش به همونجا میافته خب کرم اینجا تشبیح به چی شده؟ به انسان انسان حذف شده یکی از خصوصیات ویژه انسان اشاره کردن. اشاره. آورده برای کرم ثابت کرده کرم اینجا الان شکل محسوس پیدا کرده اینگاه که کرم یک شخصی است و با انگشت خودش اشاره میکنه استعاره میشه استعاره مکنیه بلکنایه کرم تشبیه شده به انسان انسان حذف شده اشاره کردن اشاره از خصوصیات انسانه برای کرم ثابت شد استعاره مکنیه است، نگاه کنید توضیح میده شب به حل کرم و به انسانه کرم اینجا تشبیه شده به شخص به انسان ده. سمه هزفه بعد انسان هست شده مشبهانه و روم زهیلهیه به شیء من لوازمه الخاصه بعد اشاره شده به چیزی از لوازم خاصه انسان و هو اشاره و اون هم ببارد هست از اشاره یعنی اشاره کرد اشاره کردن از خصوصیات انسان و خوبه اشاره علا سبيل استعاره المکنیه ده. بر طریق استعاره مکنیه و قرینه همیشه اینجا همون اثبات لازمه که قرینه لفظیه والله قرینه تو اثبات الاشاره دل کرم قرینه اثبات اشاره است برای کرم یعنی ما اومدیم اشاره کردن رو برای کرم ثابت کردیم این قرینه است پس میشه استعاره ثاره بگید مکنیه با و مسرحه و مکنیگر رو به طور کامل برای شما گفتیم و شما هم خوب دیدید حالا شاید پنجه تا مثال دیگرم تا آخر استعاره از این استعاره مسرح و مکنیگر قایی زد بریم درس بعد ما. درس بعد رو من یه مقداری ذهن شما رو نسبت بهش آشنا کردم و بیان کردم که خیلی گمنام نباشه براتون ولی اینجا می‌خوام دیگه هم به شکل جزوی بگم هم مثال داشته باشیم و شما بفهم اساسانه از یه لحاظ دیگه حالا چه مصرحه باشه چه مکنیه فرقی نمی‌کنه. اولا یادتون باشه که ما در استعاره مصرحه و مکنیه گفتیم کدومشون بیشتر استعمال دارد نسبت به اون یکی گفتیم استعاره مصرحه در کلام بیشتر از استعاره مکنیه این درست درک کرد. یعنی اگه ما 100 تا داریم 60 تاش مصرح است 40 تاش مکنی است. درست شد؟ مصرحه بیشتر. این مطلب اول. حالا میایم میگیم ستاره همون 100 تا که حالا 60 تاش مصرحه است چلتاش تاش مکنی هست این استعاره به طور مطلق الان است. استعاره به طور مطلق یعنی چه مصرحه چه مکنیه تقسیم میشه به دو دسته دیگه یک یک استعاره اصلیه دو استعاره طبیعی یک استعاره اصلیه دو استعاره بگید طبیعیه پس استعاره به چند دسته تقسیم شد دو دسته اصلیه طبعیه حالا این دو قسم رو در اون دو قسم ضرب کنیم باید استعاله چند قسم ما اینجا داشته باشیم که بحثش رو بکنیم چهار قسم اولا استعاله مسردهه بیشتر از مکنیه است ثانیه اصلیه بیشتر از طبعیه است اصلیه بیشتر از طبعیه است خب اگر این شکل دانستیم پس ما چهار نوع اسطحاره رو با هم میخونیم تو این درس یک یک مصرحهی اصلیه مصرحه است و اصلیه درست این یک دو مکنیه اصلیه مکنیه اصلیه این دو سه مصرحه تبعیه چهار مکنیه تبعیه اینطر میش دی یک بگو مصرحه اصلیه دو مکنیه اصلیه سه مصرحه طبعیه چهار مکنیه تبعیه این چهار قسم میشه دیگه. چون استاره به طور مطلق مطلق گفتیم منظور یعنی چی؟ یعنی چه مصرحه چه؟ مکنیه استاره به طور مطلق تقسیم میشه به اصلیه و طبعیه درست شد؟ این چار قسم میشه. نگاه کنید این چار قسم قسم اول بیشتر است از قسم دوم. قسم دوم بیشتر از قسم سوم، قسم سوم بیشتر از قسم چهار. درست شد؟ یعنی اگر ما صد تا ستاره داشته باشیم، صد تا ستاره داشته باشیم. 40 تاش از نو اوله. درست شد؟ سی تاش از نوع دومه یعنی اون چل درصد این سی درصد 20 تاش از نوع سومه یا بیست و پنج تاش از نوع سومه پنج درصدش از نوع آخره یعنی درصدها چطور شد حالا ما داریم به شکل ساختاری بهتون میگیم اولی که مصرحه اصلی است گفتیم چند درصد؟ 40 درصد. دومی که مکلیه اصلی است گفتیم چند درصد؟ گفتیم سی درصد. سومی که مصرحه تبعی است گفتیم چند درصد؟ گفتیم 25 درصد. آخری که مکنیه تبعی است گفتیم 5 درصد. حالا این درست ها رو دیدید که متن درس ماست ما توی امثله توی بگید امثله توی گروه یکش گروه یکش چند تا مثال یک دو سه توی این گروه یکش دو قسم اولو گفته دو قسم اول کدوم است مصرحه بگید اصلیه مکنیه اصلی یعنی اون دو قسم. همون در قبلمون میشه تو این قسمت اول بود. توی این قسمت دوم که در واقع چهار و پ توی این دوتا مثال قسمت سوم رو گفته. قسمت سوم کنوم بود مسلحه طبه. اون قسمت چهارم به دلیل اینکه 5 درصد کمه اونا نگفته. اونو برد برده توی بحث قواعد رو نگاه کنید قواعد توی پایین قواعد یه هاشیه هست هاشیه یک نوشته تقسیم ال استعارت الى اصلیت و طبعیت عام منفل استعارت سوا اون اکانت تصریحیت ام مکنیت و مثال ال استعارت المکنیت طبعیت. یه مثال برش داده اونم تو اشیه چون پنی درست داده. کمه پس برای اینکه گم نشی کتاب رو بفهمی ما اومدیم بیان کردیم تو سه قسم اولش بگید استعاره های اصلیه و مکنیه اصلیه رو بسارده توی دو قسم بعدش مصرحه تبعیه رو گفته که گفتیم 25 درصد هست زیاده تو کلام تو قرآن هم هست تو کلام هم هست اما خب 25 درصده اینو گفته این امثله 95 درصد تو پوشش میده 5 درصد که مکنیه طبعی است که خیلی خیلی نادره براش یه مثال درست کرده تو هاشیه گفته خب این مال متنی که ما براتون بیان کردیم حالا استعاره اصلیه کدام است؟ استعاره اصلیه که هفتاد درصد استعاره ها رو تشکیل میده مصرحش چل درصد؟ مکنیش سی درصد؟ خدا است هر استعاره ای که هر استعاره ای که لفظ مستعار اون لفظی که تو کلامه لفظ مستعار اسم جامد باشد اسم جامد باشد استعاره اصلیه نامیده می شود اسم جامد و مشتق هم خودتون بلکید هرگاه لفظ استعاره لفظ مستعار از نوع اسم جامد باشد استعاره را استعاره اصلیه می نامند یعنی تو همون مثال های قبل که خوندیم مثلا فرض بفرمایی که البهر البدر تو اون مثال صیف و دوله اینا همه اسم جامده اصلی هست درست شد اما اون مثالی که خوندیم کان یقری یقری چون اسم جامد نبود میشه استارش غیر اصلیه میشه تبایی درست شد هرگاه لفظ مستعار اسم جامد باشد استعاره را اصلیه میگویند. چه مسرحه باشد که چل درصد چه مکنیه باشد که سی درصد قواعد رو ببین قواعد تکون و عل استعاره تو اصلیه تن استعاره اصلیه خواهد بود از اللفظ و لذی جرت فیهه هنگامی که اون لفظی که استعاره درش جاری شده از اللفظ و اسمن جامده زمانی که اون لفظی که استعاره توش جاری شده اسم جامد باشه اسم جامد باشه حالا یک و دو و سه رو من میخونم که مال استعاره های اصلی است، و اسم جامده این تمام بشه بعد وارد استعاره های تبعیه خواهیم شد الامثلتو قال المتنبی آقای متنبی گفته یسف و قلمن. که توصیف میکرده قلم را قلم یعنی همین چیزی که در دست من و شماست و باهاش مینویسیم توصیف میکرده قلمی رو یعنی قلمی رو داشته وصف میکرد یسف و قلمن حال است از برای متنبی. متنبی گفته در حالی که توصیف میکرده قلمی رو میگه یمود جز زلامن قلم ها قدیم از نوع نی بوده میزدم تو جوهر روی کاغذ مینوشتم مثل این که الان با قلم مینویسم. بعد این وقتی روی کاغذ حرکت میکرده یه صدای خش و خشی الان هم دیدید اینا که با قلم مینویسن صدایی از قلم موقع کشیده شدن روی کاغذ شنیده میشه و مرکب رو روی کاغذ میماله مدجه ی مدجو یعنی پرت کرد پرش کرد امیرالمومنین در نحوه بلاغه میگه ما مزحه امروان مزحتن، الا مج من عقليه میگه هیچ کسی نیست عاقل که شوخی بیجا کنه ما مزه امروان مزحتا هیچ آدم عاقلی یه شوخی بیجا نمیکنه مگر الا مج من عقليه مگر قسمتی از عقل خودش بر رو برمیداره آدم عاقل میگه شوخی بیجا نمی کنه. اگر شوخی بیجا کرد به اندازه اون شوخی از عقل خودش بگید. بیرون انداخته. عقل رو کنار گذاشته. الا مدجمین عقلهی مدجم. یموجو یعنی پرت میکنه میپاشه. زلامند. زلام یعنی تاریکی یعنی شب. فائل یموجو میخوره به قلم میگه پخش میکنه قلم تاریکی را شب را فی نهارن در روز شب و میریزه تو روز قلم چی میریزه؟ ببخشید این یموجو فاعلش لسانه هست یعنی لسانه قلم می پاشد تاریکی را در شب را در روز زبان قلم زبان قلم و قلم بیتر مثل زبان درست میکنن که مرکب رو میکشه رو کاغذ میگه این زبان قلم می شب را در روز اگه گفتون نوک قلم درست شد هیچ مشکلی نجام قلم نوش داره دیگه یعنی اون تیزی اولش ما هیچ مشکلی نداشتیم رأسل قلم بذار اینطوری میکنم اما الان داره میگه زبان قلم این زبان قلم اصار مکنی است. قلم تشبیه شده به چی؟ به انسان زبان که از خصوصیات انسانه برا قلم بگید صابت شد یه زبان قلم ما احساس بکنیم قلم یه موجود زنده است و دارای زبانه مثل این که زبان حال حال رو تشبیه کرده به یک انسان انسانی که میتونه بیان کنه بعد زبان رو که از خصوصیات انسانه آوردن برای حال ثابت کردن میگن زبان حاله یعنی حال گویاست مثل انسانه زبان داره زبان مال اون آوردیم برای این. حال تشبیه شده به انسانی که داره بیان میکنه خب قلم هم تشبیه شده به انسان در بیان کردن بعد زبان رو که از خصوصیات انسانه برای قلم ثابت کردیم مش استاری چی؟ مکنیه حالا قلم که اون ها زمیرش بهش میخوره قلم اسم جامد نیست؟ چرا؟ پس اصلی هست. دوم، این مال مثال لسانه زلامند زلام اینجا یعنی شب تاریکی حالا این قلم تاریکی و شب رو میاره میریزه تو روز یا مرکب و میریزه رو کاغذ. مرکب رو میریزه مرکب چون سیاهه تشبیهش کرده به چی؟ به تاریکی شب, به شب. مرکب هست شده زلام اومده جاش یعنی در واقع باید میگفتش که مرکبی را که مثل زلام است در کاغذی که مثل روز سفید است میریزه این دوتا استعالایی مسرح است مرکب تشوی شده به بگید شب و تاریکی کاغذ اون در و رق چیز که روش می نویسی. تشوی شده به روز در سفیدی مرکب تشبیه شده به شب در تاریکی تشوی شده به شب و تاریکی در سیاهی و کاغذ و قرتاز تشبیه شده به روز در سفیدی خب دوتا استاره مسرحه بود یه دونه مکنیه که محاملتون باشه کدیم مسرحه شده حالا زلام و نهار اسم جامد نیستن؟ چرا؟ پس میگه پخش میکنه یعنی ترجمه این مثلی ای میشه پخش میکنه مرکبی را که مثل شب است بر روی کاغذی که مثل روز است زبان غلم پخش میکنه مرکبی را که مثل شبه در کاغذی که مثل روزه زبان... بعد میگه ویف همو حالا معنا میگیم تموم شد مثالش ویف همو عمن قال ما لیس یسمعو یعنی ما لیس میگه این قلم که دو دست شما است تق خشخش میکنه و میره و مینویسه این قلم میفهمه از اون کسی که داره اینو تکونش میده و مینیویسه میفهمه که او چی میگه و همونارو مینیویسه این قلم چیزی رو که نمیشنبه ما نمیبینیم که این آقا چیزی بگه و این قلم بنویسه اما قلم داره می‌نویسه میفهمه از اون آقایی که این قلم رو به کار میبره، از او میفهمد. درست شد چیزهایی رو که نمیشنبه یعنی اون آقا به این قلم میگه قاله اما من میشنوه از اون کس اما ما صدای از اون نمیشنویم که اون بگه پس یفهم و ولم امن از کسی که قال یعنی قال لهو. این امن قال یعنی اون نویسنده میفهمد از اون نویسنده کسی که چیزی بهش بگه ما این مفعول یفهم است میفهمد چیزی را که لیس یسمو چیزی رو که نمیشنوه با گوشش نمیشنوه گوشی ندارد که بشنوه ولی هر چی که اون کاتب میگه این می نمیسه میخوره میخورو بود می حرکت میکنه می خب این مثال اول نگاه کنید بخونم توی بحث البحث فلعبیات سلاست ال در ابیات سگانه اول درست شد استعاراتون مکنیتون و اصلیت چی مکنیتون و تصریحیت استعاره های مکنیه هست یا بلکنایه و تصریحی هست یا مصرده توی این ستای اول سه ستاشو توی مصره اول ما دیدیم ففل بیتل اوله شب هل تشبیه شده قلم میگیم کو قلم که ذک نشده تون اون بیت اول میگه و او لسانوهو هو خام به قلم یعنی لسان و چون در وصف قلم گفت شب به حال قلم و هو مرج و الذمیر فی لسانوهو هو به انسانه قلم تشبیه شده به انسان ثم حذف المشبه هو به بعد مشبه هم به انسان هست شده و روم ذیلیه به شیء من لوازم هل خاصه بعد اشاره شده به انسان با چیزی از لوازم خاصش، و حوال لسان و اون هم عبارت است از زبان فل استعارت و مکنیتون و چون قلم اسم جامده ها که مرجع زمیر برش دلالت میکنه میشه دوباره و شبه هل مداد یعنی مرکب به زلام یعنی به شب میگه باخره بچه شبه مرکب با شب چیه؟ میگه به جامعه جامعه یعنی بچه شب. به جامعه سواد فی کلن به این که در هر دو تا سیاهی هست ولی خب سیاهی در شب زیادتر هر چیزی رو به شب تاریک وستویرم بعد اومده استعارا آورده شده آریا برده شده اللفظ و دا لل به بهی یعنی دل للمشبه یعنی برای مرکب الاسبیل لست آرت تسریحیت یا المسرعت اونم اصلی است چرا چون زلام اسم جامعه دوباره و شب به هل ورقو ورق یعنی الگرداز کاغذ تشبیه شده الورق به نهار میگه اینجا چیه؟ میگه به جامعه هر دو سفیدن اما سفیدی روز مشهورتره، واضحتره میگن مثل روز روشن میمونه خیلی واضح سم و استویر و دال علل مشبهه بهی بعد لفظی که دلالت بر مشبهه به میکنه یعنی نهار رو آوردیم برای مشبهه یعنی ورق و که هست علا سبیل استعارت تسریعیت اول مسرحت و چون نهار هم اسم جامده پس اصلی است. خب اینم راحت بود حالا بریم مثال دو با تکرار دیگه و قائل یوخات به سیفت دولت. باز متنبی گفته در حالی که مورد خطاب قرار داده سیفت رو مورد خطاب قرار داده سیف سیفت دلار. و قائل یوخات به سیفت دولت. می‌نویم چی گفته؟ گفته متنبی در موردی که در حالی که مورد خطاب قرار داده سیفت دولته. گفته آه به دوستت میدارم به تو علاق مندم به سیفت دوله بود. یا شمس از زمانه و بد رحو. ای خورشید روزگار ای خورشید دوران و ای ماه روزگار ای ماه دوران یا شمس از زمانه و بد آیا واقعا اینجا این از شمس و بدر شمس زمان و بدر زمان همین شمس و بدر آسمان رو اراده کرده؟ میگویم نه او احب به کی گفته؟ میگه به سیف و دوله کتاب کرده به سیف و دوله دستشو دراز کرده گفته احب بوکه تو رو دوست میدارم ای خورشید عالم، ای ماه عالم. پس اینجا خورشید و ماه مجازند یعنی ای سیف الدوله ای که مثل خورشید هستی در تابش و اشراق و ای سیف الدوله ای که مثل ماه هستی در اشراق و بلند مرتبگی و زیبایی من تو رو دوست می‌دارم حالا شمس و بدر به بهن اومدن جای سیف و دوله نشستن یعنی باید می‌گفت ای سیف الدوله ای که مثل خورشید هستی و ای سیف الدوله ای که مثل ماه هستی اما آمده چه کرده بگید و حذف کرده مشبعان او گذاشته چاش قرینه چیه اوهب بکم دو تاره تا است یا شمس از زمان و بدرهو بدر زمان و هر دو هم استاره های مصره است و ان لامنی فیک از سوها و و ان لامنی فی که از سوها و الفراغت سوها در آسمان یه ستاره خیلی ریزیه که افراد چشمشون رو با اون امتحان میکردن یعنی اگه کسی اون رو میتونست ببینه میخوادن این دیدش کامل یه ستاره ریز آسمان فراغت هم جمع فرقد فرقد ستاره قطبیه دو تا هم بیشتر تو آسمون نیست کن قطب جنوب شما او. حالا اینجا جمع بسته به اعتبار اینکه مشبهات اعدادشون زیاده یعنی ستارگان قطبی شده درست میگه من تو رو دوست دارم تو مثل ماه و مثل خورشیدی. اگرچه و این و اگرچه ملامت کند مرا ملامت کند مرا یعنی توبیخ کنه مرا سیکه سیکه فی یعنی فیهوب بکر در عشق و علاقه من به تو اگرچه ملامت کند در عشق و علاقه من به تو ملامت کند مرا یا نامنی اگرچه ملامت کند مرا در عشق و علاقه به تو از سوها این ستاره سوها و اگر اگرچه این ستارگان مرا در بگید رابطه با عشق و علاقه ام به تو ملامت من کنند منظورش واقعا اینه که اون ستاره قطبی از آسمون پیام میفرسته که منو ملامت میکنی که خاک تو سر چرا سیفت رو دوست داری؟ یا منظورش از و فراخت کیه؟ این افراد کوچکتر وزیر و وکیلایی که توی دربارن میگه اینا به من میخواق ای بگو اشتمنی سیفت داره دارم سیفت داره ای اینطوری بگو آه. چیه چه خبره چقدر اون افرادی که پایینتر از سیفت دوله هستند و توی کاخ هستند اونا رو تشبیه کرده به سحاب و فراخت شد؟ در کوچیکی. بعد سیف دوله رو کرده به شمس و بدر سیفت دوله و اون افراد حذف شدن مشبهان به به نشسته قرینه چیه برای اینکه ما فهمیدیم سوها و فراقت واقعا منظور بگید ستاره سوها و فراقت نیست فرینه نیست. چون سها و فراغت کسی رو ملامت بگید نمیکنه سوها و فراغت کسی رو ملامت نمیکنه اونی که ملامت میکنه این کوچولو موچولو هایی هستند که داخل در کاخند اونها هستند که ملامت میکنند. حالا نگاه کنید بخونید خیلی راحته و بیت سانی شب به حسیف و دولت مرتن به شمس در اشراق و درخشش زیبایی و مرتن به در بلند و زیبایی به جامع الرفقه رفعه رفع یعنی بلند و ظهور و آشکار بودند ماه همه میوید سوما استوی علّب زد على المشابه بهی و هوش شمس و البعدرال مشابه یعنی سیف الدولت علاس بیل الاستارت التسريعیت فد کرد ماتی دو تاستارت تا تسريعیه از در این دو جوره بعد نگاه کنید و شعب هم مندو نه هو یعنی کسانی که زیر دست سیف الدولت پایین تر از سیف الدولت یعنی اون وزیر وکیلای توی کاخ و شعب هم مندو از سیف الدولت مردتاً به سوها یه بار تشبیهشون کرده به سوها که خیلی ریزن و مردتاً به نجوم به فراغت ستارگان قطبی به جامعه سقر و الخفا چرا آنها تشبیه کرده به سوها و فراغت چون هم ستاره قطبی هم ستاره سوها اینقدر ریزن دیده نمیشن کچولو شد به جامعه سقر کوچکی و خفا پنهانی ثم واسویر اللفظ و دال علالمشدّه بهی بعد لفظی که مال مشبهون هم بهوده یعنی سحا و فراق و هوا از و هوا از سحا و فراق لالمشبل برای مشبل علو سویل الاستعاره التصریحیه استعاره تصریحیه در دو کلمه خوب اینا توش سه تا استعاره تصریحیه الان تو این دو تا مثال پنج تا استعاره مصرحه اصلی خوندی ظلامن نهارن شمس بعد صحاب و فراغت حالا صحاب و فراغت اگر هر کدومشونو تک تک حساب کنیم میشه ششتا خب برای با هم باشیم میشه هشتا که با هم بهتر اما یه دونه اصدار مکنیه کندیم لسانه هم گفتیم مکنی کمتر از مصدر اما همشون در اسم جامد اصلی است. کانید نگاه کنید هاشیه یه که له از سوها نجممون خفی شد، سوها ستاره است پنهان یمتهن و بهی افزارار مردم با اون چشمشونو امتحان میکن. و فراقد جمع و فرقد فرا جمع فرقده و هو نجمان غریب منن قطب ستاره ای است که نزدیک به قطبه و فی سماه فرقدان نیست غیرو در آسمان در عالم هستی، ما دو تا فرقت بیشتر نداریم دو تا ستاره قطبی اینجا که فراغل گفته ستاره قطبی چون باست تشبیه بوده مثال سوم مثال سوم قال المعری آقای عبالعلای معری این شاعر ای که نابیناست آقای عبالعلای معری گفته در رسا در مرسیه ی کسی مرسیه ی کسی یعنی چی؟ یعنی یک مردهی مرده بوده این داشته مده او رو میکرده مد و سنا که از دنیا رفته بهش میگن چی؟ بهش میگن مرسیه و رسا میگه فتن فتا یعنی چی؟ جوان مردی بود این فتن خبر مبتدا محضوفه یعنی هوه یعنی اون شخص اون شخص جوانمردی بود خب اینگه که چی نیست این خبر مبتده محضوفه هوه فتن عشقت ها البابلیتا عشقت ها یعنی عشق به او میورزید عاشق او بود ای جمله صفت فتنه او جوان مردی بود که عشق به او می ورزید البابلیتو البابلیه صفت مصوف محضوفه یعنی الخمرتو البابلیتو بابلیه به شراب میگن چون بابل در عراق بهترین شرابها رو درست میکردن لذا بابلیه که میگفتن یعنی بگید شراب بابلی هقبتن هقبه جمعش احقاب که تو قرآنم اومده یعنی مدتن من از زمان مدتی از زمان مدت طولانی میشه هقبه درست شو یه ظرف مفغول پس ترجمه این مثل چی شد او جوان جوانمردی بود که آشق او بود شراب بابلی مدت ها در زمانهای طولانی اینکه منظورش شراب بابلی عاشق او بود یعنی چی؟ چطور عاشق در خدمت معشوق خودش از خودش اراده ای نداره؟ اینم یعنی شراب بابلی دم دستش بود تو مشتش بود میگه او جوان مردی بود که شراب بابلی تو مشتش بود دم دستش بود در اختیارش بود مثل عاشقی که در اختیار معشق همینجا شاید مثال ماست همینجا شاید ما این که میگه شراب بابلی عاشق او بود خب شراب بابلی که عاشق نمیشه با هر شراب بابلی الخمرت و البابلیتو به چی تشبیه شده باشه؟ به یک انسان زیبا بود، به امرهتن حسنا شابتن یک زن جوان زیبایی که در این سنینش با عاشقی معنا داری پس الخمبه تشبیه شده به فتاتن به امرهتن جمیلتن بعد اون امرهتن حسنا جمیلتن حذف شده عشقت ها که از خصوصیات اوست لازم خاص اوست برای بابلیه اثبات شده میشه اثاره چی؟ مکنیه بعد خمره خمره که این هر بابلیه صفت اون از جای محصوف نشسته بوده اون خمره اسم جامده شراب. پس میشه استعاره ما مکنیه اصلیه چی به چی تشبیه شده بود؟ الخمرت و البابلیگتا تشبیه شده به چی؟ به امرعتن، حسناء، جمیلتن، شابتن به زن زیباروی و جوان بعد این امرعتن، شابتن، حسناء، جمیله هست شده یکی از لوازم خاصش که عشقت ها هستش برای الخمرت البابلیه اثبات شده این میشه استعاره مکنیه و چون الخمرت البابلیه تو اسم جامده میشه اصلیه اثبات لازم اثبات لازم هم به برا مشبه میشه قرینه استاره که گفتیم همیشه نفسی نام در درسای قبلمون داریم میخونیم چه جدیدی نیست میگه فتن عشقت حول بابلی یه تو جوان مردی بود که عشق به او میورزید شراب بابلی مدت حالا این شراب بابلی دم دستش بود مدت ها به او عشق میورزید و شراب بابلی در اختیارش بود این خلاصه میخورد یا نمیخورد ابالالا میگه فلم یشفه ها منهو به رشفن ولا لسمن فلم یشفه شفا یشفی یعنی شفا داد دلشو به دست آورد فلم یشفه ها ایها به خمره بابلی شفا نداد دل این عاشق را دل این خمره بابلی را منهو از خودش دل او رو به دست نیاورد از طرف خودش به رشفن با یک مکیدن مرشف یعنی حوله رشفه یعنی مکید یه چیزی خوش کرد با مکیدن ولان لسم لسم لسمه یعنی قبله یعنی باسه بوسید یعنی به لبش گذاشت میگه دل این عاشق رو به دست نیاوردین شراب را از طرف خود نبا مکیدن او خوردن او و نه با بگید به لب گذاشتن او یعنی نه تنها نخورد حتی به لبش هم نگذاشت میگه این آدمی بود که شراب بابلی کاملا در اختیارش بود و به هر شکلی شراب بابلی رو میتونست مصرف کنه ولی او حتی یک بار از او ننوشید یک بار به دهان نریخت و یک بار هم او رو به لب نگذار کرد فلم یشفه ها منهو به رشفه ولا لسم فایل لم یشفه میخوره به فتن ها میخوره به خمره بابلیه منهو میخوره به فتن رشفه یعنی مکیدن لسم یعنی بوسیدن نگاه کنید الحقبه و, و من الزمان و یراد بها المدته التویله، مدت طولانی رو الحق به میگه و رشف الماء یعنی مسهو مکیدش مسهو یعنی مکیدش اصلا مساسه به چی میگه بستانه که بچه میمکه رشف از ماء یعنی مسهو پس من به هوله میگن چون آب رو خشک میکنه میمرد و لسن از تقبیل یعنی قبله یعنی باسه یعنی بوسید خب حالا بیاید توی متن مفل بیت ثالثه شبحت البابلی تو و هی الخمر تو منظورشه الخمر الخمره بهترید و هی الخمر تو تشبیه شده بابلیه که عبارت از نظر خمره یعنی شراب به امرعتن یعنی به امرعتن حسناء شابتن جمیلتن به امرعتن حسناء شابتن جمیلتن به یک خانم جوان زیبایی که اشفاشقی جزء دوران اوست ثم محوظ فل مشبهو بهی بعد مشبهان به که این امرعتون باشه حذف شده و روم زیلهیه به شیعه من لوازمهی اشاره شده به چیزی از لوازمش و هوه عشقت هون الاسبیل الاستعارت المکنیت الاسطلیت. چرا اصلیه چون خمره اسم جامعه پس نگاه کنید تو مثال سوم یه استعاره مکنیه داریم که اصلی است توی مثال دوم سه تا استعاره داریم سقا و فراغت، شمس و بعد برد همه مسرحند تو مثال اول دو تا مسرحه داریم زلامند و نهار و یه دونه مکنیه داریم به سانوه. دو تا مکنیه سه چهار تا مسرحه مثالهاییه که تو این ستا خوندیم و همه مثالها لفظ استاره اسم جامده همه مثالها مثال ها لفظ استعاره اسمه بگید جامده و به همین دلیل که اسم جامد آمده استعاره واقع شده چه مکنیه باشند و چه مسرحه باشند بهشون میگن اصلی. پس 70% درصد استارها از این نوعه که توی قواعد ما خوندیم تکون استعاره تو اصلیه کان ازاکانه لفظ و, ازاکان اللفظ و جرد فیه اسما جامده اون لفظی که استعاره توش جاری شده اسم جامد باشه حالا چه مسرحه؟ چه؟ مکنه مرحله دومش میخوام بگذارم براتون بمونه که جلسه آتی در واقع تا اینجا بازی حالت تکرار داشت جلسه آتی این مبحث رو تمام میکنیم و میریم سراغ تقسیم استعاره از یه لحاظ دیگه که مبحث درس بعدی من باشه. اون رو یه ای در انتهای جلسه بعد خواهیم داشت مباحث مباحث ساده است تکرار توش زیاده فهم خیلی تأثیر داره شما نگاه بکنید توی درس متون نظمونت شما 10 تا بیت هشت تا بیت 20 تا بیت میخونید با توی اینجا داریم همه عبیات رو میگیم لغات رو میگیم اعراب و ترکیب میگیم ترجمه میگیم با الفاظش بازی میکنیم که شما در این وقتی که هستید استفاده خوبی رو ببرید و درستاشم معمولا تکرار میشه و قصدم اینه که در بلاقت شما اصل معنا رو و مفهوم رو یاد بگیرید که انشالله هم همینطوره همه شما رو به خداوند سبحان میسپرم انشالله که موفق و معید و منصور باشید و السلام علیکم و رحمت الله و بلا